بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداونده به اندازم حیوان نهایت بارش الفلامیم امپراتوری روم مغلوب شد در نزدیکترین سرزمین و ایشان بعد از این شکست خیش انقریب غالب می شوند در چند سال فیصله از آن خداست هم پیش از این و هم بعد از این و در آن روز مسلمانان شادمان میشوند. شود به کومک خداوند آری خداوند کی را بخواهد پیروز میگرداند. و او صاحب قدرت مونی و مهربان است وعده خداوند خداوند وعده خود را خلف نمی کند اما اکثر مردم نمی دانند ایشان امور ظاهری زندگانی دنیا را می دانند و اما از آخرت غافلند آیا به خود نمی خداوند آسمان ها و زمین و آنچه را در میان آنهاست نیافریده مگر به حق و در دوره معینی و بیگمان بسیاری مردم از دیدار پروردگار خیش در آخرت منکرند آیا در زمین سفر نکردند تا ببینند که آخر کار کسانی که پیش از ایشان بودند چگونه بود ایشان در قدرت خویش از اینها نیرومندتر بودند و زمین را برای کشت زیرو رو و آن را نسبت به ایشان بیشتر آباد کردند و برای ایشان پیامبرانشان با معجزهها آمدند چنین نبود که خداوند بر ایشان ستم کند بلکه ایشان خود بر خیشتن ستم می کردند پس عاقبت کسانی که بدی کردند بد شد چون موجزه های خدا را تکذیب و به آن استهزا می کردند خداوند آفرینش را آغاز می کند سپس آن را باز می گرداند سپس به سوی او بازگردانده می شود و روزی که قیامت برپا می شود گنهکاران ناامید و حیرت زده می شود و از شریکانشان برای ایشان شفاعتگری نمی باشد در این حالت است که ایشان از شریکان خیش این کار کنند و روزی که قیامت برپا می شود در آن روز مردم از یک دیگر متمایز می شود در این حال آنانی که ایمان آوردند و اعمال نیکو ورزیدند در بهشت شادمان ساخته می شود و اما آنانی که کافر شدند و از آیات ما و لقای آخرت انکار کار ورزیدند هم ایشانند که برای عذاب احضار می شوند پس خداوند را در شامگاهان و صبحگاهان به پاکی یاد کنید و ستایش از آن اوست هم در آسمانها و هم در زمین و هم در آخر روز و در هنگامی که وقت چاشت را میگذارانید زنده را از مرده بیرون میارد و مرده را از زنده بیرون میارد و زمین را بعد از مردن آن زنده میگرداند و شما نیز این چنین از قبر خیش برآورده میشهید. و از نشانه های او یکی هم این است که شما را از خاک آفرید و باز شما مردمی پدید آمدید که به هر طرف پراغنده شوید و از نشانه های او یکی هم این است که برای شما از خود شما زنان را آفریده تا در کنار آنها آرامش شابید و او در میان شما دوستی و مهربانی برقرار ساخت بیگمان در اینها برای گروهی که فکر میکنند نشانه است. و از نشانه های او آفرینش آسمان ها و زمین است و نیز اینکه شما به زبانه های مختلف سخن می زنید و دارای رنگ های مختلف می باشید واقعا در این ها برای دانشمندان نشانه است و از نشانه های او خوابیدن شماست در شب و روز و نیز جستن چیز از فضل اوست. بیگمان گمان در این برای کسانی که سخن حق را می شنوند نشانه است و از نشانه های او این است که به شما برقک را می رمایاند. که هم موجب ترس و هم مایه امیدواری است و نیز آب را از آسمان نازل می کند و با آن زمین را بعد از پشمردگی آن زنده می سازد بیگمان در این برای کسانی که خوشیارند نشانه است و از نشانه های او این است که آسمانها ها و زمین با حکم او می استند. سپس همین که شما را از زمین فراخاند آنگاه از قبر خیش بیرون می شید هرچه در آسمان ها و زمین است از آن اوست همه به او فرمان برند و اوست که همه مخلوقات را در آغاز می و باری دیگر آنها را باز میگرداند. و این آفرینش دومی بر او آسانتر است به او نمونه اعلای جهان هستی هم در آسمان ها و هم در زمین تمثیل می شود و او صاحب قدرت منعی و با حکمت است برای شما از تجارب خود شما مثال زد آیا شما را بردگان هست که در آنچه به شما روزی داده این با شما شریکند و شما و ایشان در آن برابرید از ایشان توری می ترسید که از قوم خود می ترسید به این ترتیب این آیات را برای مردمی که عقل خود را به کار میاندازند تفصیل می دهیم نخیر بلکه ستمگاران تنها هوا و هواس خود را پیروی کردند بدون آنکه در زمینه علمی داشته باشند پس آیا کسی را که خداوند گمراه کرد کی هدایت می کند و برای ایشان مددگارانی نیست پس خود را به دین خالص و پاک راست کن با همان سرشده که خداوند مردم را بر آن آفریده است در آفرینش خداوند هیچ تغییری صورت گرفتن نمی تواند این از آین استوار اما اکثر مردم نمی داند به او روی آرنده باشید و از او بترسید نماز را به تمام و کمال ادا کنید و از مشرکان ما باشید. از آنانی که در آین خیش تفقه انداختند و در گروهها تقسیم شدن هر گروهی برایی که در پیش گرفته است خورسند است و چون به مردم مشکل آید شود پروردگار خود را می و به او رجوع می کنند اما چون به ایشان مرحمتی از جانب خیش بچشاند آنگاه گروهی از ایشان به پروردگار خود شریک میآورند تا به آنچه که به ایشان دادیم ناسپاسی می کنند اکنون از لذایز زندگی بهره گیرند اما بزودی به قصور خیش پای می یا آیا به ایشان دلیل فرو فرستادیم تا مطلب را به زبان آورند که به وسیله آن حقانیت شرک آنها ثابت گردد و چون به مردم مرحمت به چشانیم به آن شادمان می شوند. اما اگر به ایشان سبب اعمالی که از پیش انجام داده اند مصیبتی برسد در این حال است که ایشان نامید نا می گردند بایا نمی بینند که خدا به هر که بخواهد روزی او را فراخ یا تنگ می سازد بگمان در این نشانه است برای آنانی که ایمان دارند پس حک صاحب قرابت مسکین و وامانده در راه را بده. و این کار برای کسانی که رضای خدا را می جویند بهتر است و هم ایشانند رستگار آنچه را از سود می تا در مالهای مردم بیفزاید پس در نزد خدا فیزونی ببار نمی آورد و آنچه را از زکات می دهید که با آن رضای خدا را می جوید هم ایشانند صاحب فیزونی خداوند ذات است که شما را آفرید سپس شما را روزی داد باز شما را می می و باز شما را زنده می گرداند آیا از شرکای شما کسی هست که برخی از این چیزها را کرده بتواند؟ پاک است او و او از آن چه با او شریک می آورند برتر است به نسبت اعمالی که مردم مرتکب می شوند و بحر را فساد فرا گرفته است تا خداوند به ایشان جزای بعضی از اعمالشان را بچشاند تا باشد که ایشان از گناهان خیش بازگردند بگو در زمین سفر کنید و ببینید که آخر کار پیشینیان چگونه بود اکثر ایشان مشرک بودند پس به آینه بر حق آورد. پیش از آن روزی فرار که در آن راهی بازگشتی از عذاب خدا نباشد و در آن روز است که نیکوکاران از بدان جدا می شوند هر که کافر شد پس بر اوست جزای کفر او و آن کسانی که اعمال شایسته انجام دادند پس ایشان برای خود در بهشت گهوارهای می سازند تا خداوند آنانی را که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند با فضل خویش پاداش بدهد بیگمان خداوند کافران را دوست ندارد و از نشانه او این است که بادها را به حیث مجددهنده می فرستد. تا شما را از فضل و مرحمت خیش بچشاند. و تا کشدی ها به حکم او براه افتند و تا شما چیز از فضل او را بجوید. یعنی در جستجوی روزی حلال شوید، و تا باشد که سپاسگذاری نمایید. بگمان پیش از تو پیانبرانی را به سوی خومشان فرستادید. پس ایشان به قوم خیش معجزه های آوردند و در این حال از کسانی که مرتکب جرم شدند انتقام گرفتیم و برماست که به مددگاری مسلمانان برسیم خداوند ذاتی است که بادها را می فرستند. سپس عبرهای را برمیانگیزد و در این حالت آنها را در آسمان به هر گونه ای که بخواهد گسترش می دهد و پارچه پارچه می سازد. پس قطرات باران را می بینی که از میان آن بیرون می آیند و در این حالت به هر که از بندگان خود بخواهد آن را می رساند و ایشان همین که قطرات باران بر ایشان باریدن میگیرد ناگهان شادمان می شوند هرچند قبلا پیش از این که بر ایشان باران فرود آید ناامید بودند سپس با آثار رحمت خدا نظر بینداز که چگونه زمین را بعد از پجمردگی آن زنده می یعنی یعن سرسبز می سازد واقعا همین آفریدگار است که زنده گرداننده مردگان است و او بر همه چیزها قدرت دارد و اگر بادی را بفرستیم که به سبب آن کشتشان را ضرد شده ببینند البته بعد از آن از همه نعمتهای پیشین ناسپاس می شوند پس بیگمان تو مردگان را شنوانده نمی توانی نه هم بکران چون پشت برگردانند صدای را شنوانده می توانی و نه هم تو کوران را از گمراهیشان بر راه بازگردانده می توانی شنوانده نمی توانی مگر کسانی را که با آیات ما ایمان دارند و ایشان مسلمانند خداوند است که شما را از ناتوانی آفرید سپس بعد از ناتوانی شما را نیرومند گردانید سپس بعد از نیرومندی باز شما را ناتوان ساخت و پیری به سراغ شما آمد خداون آنچه را بخواهد میافریند و اوست همان ذات دانا و توانا و روزی که قیامت برپا شود گناهکاران می میخورند که درنگ نکردند مگر ساعتی به دین ترتیب ایشان از راه حق باز داشته می شود. مگر آنانی که برایشان دانش و ایمان داده شده بود می واکن طبق کتاب خدا تا روز رستاخیز درنگ کردی و این از روز رستاخیز مگر شما چنین بودید که نمی دانستید. پس در آن روز آزرخواهی ستمگاران سودی بار نمی آورد و نه هم ایشان به توبه دعوت می شود و بگمان در این قرآن برای مردم از هر نوع مثال زدیم اگر برایشان هر نوع ماجیزه بیاوری باز هم بیگمان کافران بیگویند شما جز دروغگو نیستید. همچنین خداوند بر دلهای آنان مهر می نهد که نمی دانند پس صبر کن حقا که وعده خدا حق است. آن به هوش باش که ناباوران تو را به سبکسری نکشوند.